Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Esselamu ve ala ibadillah's salihin. Ya مولانا ya sahib az zaman, hada yawmul cum'a wa huwa yawmuk. El والفرج fi helal muamelini ala o yadaik ve katil ol kaafirinab seifek ve ana ya maula o fi helzayif o kabijaarok ve anta ya maula o kârim onun oğulları delikeram ve maa murum belzia o وعلى الارواح التي حلت عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزن عظیما <تصفيق> هیچ دانشکاهی در جهان سراغ نداریم که کل عمرش یک روز طول کشیده باشه دانشکاهی رو که خدای متار تأسیس کرد عمرش فقط یک روز بیشتر نبود درس‌ها، دقیقا فقط در همون روز داده شد دانشگاهی که رئیس این دانشگاه حضرت عبا عبدالله حسینه و بزرگ اساتیدی چون حضرت عبالفض علیه السلام حضرت علی اکبر، حضرت علی اسخر، آسم، عبدالله این گونه اساتید در این دانشگاه تدریس کردند دانشگاهی که امروز آنچنان عظمت پیدا کرده که تقریبا همه جهان به نحوی از آنها احساس می کنند شاگرد این دانشگاه هستند و لذا می بینیم که هر ساله محرم حسین علیه السلام شکوه و عظمت دیگری پیدا می و بسیار گسترده از سالهای پیشین مراسم سوگواری سالار شهیدان برپا می شود به ما گفتند که انگامی که نام حسین رو بردید و هنگامی که یاد این واقعی عجیب رو کردید این جملات رو هم بر زبان جاری کنید بگوید یا لی تنا کن نامع کن فن و عظیما ای کربلا یا ما نیز همراه شما بودیم و ما نیز به این سعادت بزرگ و این رأسگاری عظیم نائل می شدیم درباره این قضیه کربلای حسین و آشورای او سخن بسیار گفته شده. اما امشب قصد و عرض ما بر این است که از این رخداد و از این رویداد بسیار بزرگ بی و از این دانشگاه تأسیس شده ی الهی درس‌های رو فرا بگیریم و فراروی خودمون قرار بدهیم در حرکت در زندگی خودمون. چه درس‌هایی میتونیم بگیریم؟ هر کس بخواد در زندگی حسین و یاران حسین مطالعه کنه، در این داستان دروس فراوانی میتواند فرا بگیرد. اما هم به اندازه فهم و به میزان درک خودمون درس هایی را که گرفته ایم، اگر برسیم همش روی امشب اگر نه در جلسات بعد، براتون عرض خواهیم کرد. اولین نکته ای که ما در زندگی حسین علیه السلام می بینیم و به چشم کاملا میآید ارتباط بسیار نزدیکی است که حسین علیه السلام با پروردگار هستی میدارد. تواضع و کرنشی است که حسین در برابر خدای متعال انجام می‌دهد. همه ما با اون دعای معروف عرفه ما حسین آشنا هستیم. فقرات این دعا واقعا تکان دهنده است اگر منظره رو مجسم بکنیم که این بزرگوار که نور چشم پیغمبر اکرم هست فرزند فاطمه زهرا است فرزند علی مرتضی است بر روی کوهی ایستاده و در حالی که قطرات اشک از چشمان او سرازیر هست در این فقرات را میگوید الهی ان الفقير فی غنای فكيف لا اكون فقيرا فی فقری اربردگارا اگر ثروتمند باشم هم در برابر تو نادارم و مسکینم چرا صد به اینکه هم نیستم میبینیم این جملات از زبان ما حسین برون میآید خسرت صفقت و عبد لم تج الله من حب كنسیبا در این بازار مخاره هستی و جهان او بنده ای که معامله گر است در معامله زیان کرده است اگر که از حب تو از دوستی توی خدا بهره ای نبرده باشد حسین علیه و السلام در این دعا فقرات عجیب بر زبان جاری میکنه از جمله این فقرات این مطلب است که امام حسین در برابر خدا متعال به توازضوع هر چه تمامتر بیانش می کند بر زبان جاری می کند. بروردگار اگر که من به هر کس دیگر پناهنده مزامین سخن سخننو این است و هر کس دیگر پناهنده شوم هرگز نخواهد توانست مانند توی خدا به من پناه بدهد. چه کسی؟ کناخ دهنده بهتر از تو که قدرت همه ی هست ازده خدا بروردگارا آنانی که این توفیق رو یافتند مخصوصاً این قضیه و این در دل شب بیدار شدن رو امام حسین به ما داره یاد میده خدای آنان که این توفیق را یافتند که در دلهای شب با تو به راز و نیاز بپردازند چه لذتی از این راز و نیاز با تو خواهند برد یا من احبا و حلاوت المعانسه ای خدایی که به دوستان خودت حلاوت و شیرینی اونس گرفتن با خودت رو چشونده ای اصلا خود انس با خدا گرفتن یک بنده ناچیز یک بنده ناتوان در برابر قدرت مطلقه هستی قرار میگیرد پروردگار قادر و قدیر و این جور سخن میگوید ولو بنده حسین باشه رسا اولین درسی که حسین به ما میدهد در این حرکت عظیم خودش در این برنامه عجیب خودش این از که به ما یاد میدهد ارتباطتون رو هر لحظه و هر آن با خدای مستحکمتر بکنید مطلب دومی که انسان میتونه از مطالعه در زندگی حسین یاران حسین در کربلا بگیره اون مطلب چیست؟ تمام سخنرانی های امام حسین تمامش از وقتی که از مدینه میاد بیرون تا مکه میرسه از اونجا هرکت به کربلا از اون اولی که حسین علیه سلام هرکت میکنه تمام سخنرانی های او دهنده این است که از آن چه قرار است بر سر او بیاید آگاه بوده یک جا در سخنرانی های امام حسین شما نمی‌بینید. امام حسین فربوده باشه میخوام قیام کنم بالاشم و سر نگون بکنم و خودم به جای او بنشینم مطلقا مطلقا مطلقا تمام سخنان و کلامات او دال بر این است که من عاقبت کار رو میدونم سرانجام کار رو میدونم شهادت است و غیر از این هیچ چیز نیست هیچ چیز نیست از مدینه میاد بیرون به برادرش محمد ابن لهنفی وصیت میکنه اولین جملات و این اشهدو الله لا حلالله و ان محمد الرسول الله و ان الها موت حق و لا رعی بفی و ان الله یبعث و من فلقبور اینا هایتشون دهنده اینه که من میدونم چه سفری رو آغاز کردم تنها اونجا نیست در مکه هم همین داستان هستش. اونجا که خود تلمود علاول د ادم مخط تول غلاده علاجید الفتات اصلا مرگ بر فرزندان آدم نوشته شده چسبیده فرزندان آدمه همان گونی که دختران جوان گردن بندها رو بر گردن می مرگ هم همین گونه بر انسان آویخته شده است و من چقدر مشتاقم و ما اوله و اسلافی اشتیاق یوسف یعقوب الا یوسف چقدر مشتاقم که برم دیدار گذشتگانم کنم به پیغمبر رو به درم عریر رو ببینمش اینا چی مخواد بگه؟ مخواد بگه میدونم که سرانجام کار چه خواهد شد و بعد هم تکدیب رویش سره میکنه به تمام کسانی که امره او هستن و اده احتمالاً به تمهی آمدن مالی، منالی، غارتی، دولتی، منصبی، پستی یا چیز همشید. و همشون شون رو میکنه یا اختار رو میده. اون حشدار چه من منکان بازن فینا مهجتا. مبتنن الا لقا الا نفساو فلیر حلوانا هرکی خودش رو آماده کرده در راه ما خون قلبش رو بده نه خون معمولی عرب خون معمولی میگه دم مهجه یعنی خون قلب انسانی هرکی از خودش رو آماده کرده خون قلبش رو بده, یعنی, قلب رو قلب بده یعنی مرگ را مبتنان ال لقا الله نفسه و بره و بیا آمد در عرض کنم که زندگی بعد از مرگ خودش در بحث برزخی فلیر حل معنا با ما حرکت کنه بیاد اینی راهل المصبهن انشاءالله با این شرط و شروط من فرد و شروط مقام کنم از مکه طرف کربلا خب میدانسته است که چه پیش خواهد آمد نسان اینجا خیلی از سوالات اعتبار میشه بسیار اعتبار میشه که با آنکه که میدانسته از که این سرنوشت رو خواهد دو چرا رفته حالا؟ خب چرا نرود؟ میخواد یه جمله به همه ما بگه به همه ما بگه به همه آزاداندیشان جهان میخواد بگه میخواد بگه چی؟ میخواد بگه اون زمانی که ناموس خدا که دین خدا باشه در معرض خطر میفته اون وقت هستی انسان ها به هیچ قیمتی نمیارزه آه. انسانی که خودش رو مقید میداند و معتقد میداند و متدیل میداند نسبت به آین خدا که دین راستین خدا که آیین مقدس اسلام است و نه ایچ دین ندگر کسی خودش رو این معنا میدانه اون زمانی که قرار این دین در معرض خطر قرار بگیر اون وقت چه خواهد کرد؟ از همه چیز خودش بس طرف نظر بکنه یه بحثی تو قد قرآن عظیم مطرحه که همتون باش برخورد داشتید و میدانید اون بحثی که در قرآن کریم مطرح است بحث آزمایشه، بحث امتحانه سوریه انکبوت قرآن نگاه بکنید Alif la amin A'asib annaz an yutraku an yagulu amanna ve hom la yuftanun ve lقد fıtnalladiyna min qablihim fela yagnamannallahu alladiyna sadagu ve la yagnamannalkadibin Mardım khiyar çerden Hemenin gafetlerden İman abudin çifayet <chat> bikin Hom la yuftanun در های آزمایش مردم قرار نمی گیرن چرا ما همه را آزمودیم همه را آزمودیم تا معلوم بشه راستگو کی دروغگو در ادعای ایمان نهایت قضیه اینه هر کس رو خدا به اندازه که بهش داده باشه امتحان میگیره هر چی زیادتر داده باشه امتحان دشوارتر حضرت عبا عبداللال حسین همین جوره شنیدن آن چه در کربلا گذشته به زر سقاطه به زر سقاطه انسانهایی رو که دل به حق داده اند اصلا دگرگون میکنه منقلب میکنه چرا صد به اینکه که انسان در خود اون قرار بگیره چرا صد به اینکه که انسان خودش بره در امتحان قرار بگیره وای وای وای, وای سخت،, سخت بچه شیش مهادو بگیر سه روز آب نخورده شیرم هم نخورد نیمه جانه بچه تو بغلت بال بال بزنه خونش بریزه این امتحان امام و چی بگه؟ بگه حوان علی یمان از یه نوب عین الله آسونه چون خدا داره میبینه برای رضای خدا سینا همشتی دین خدای متعال در معرض خطر که افتاد اونجا تمام مناسب و مقامات و اموال و تمام این اموری که انسان بهشون تکیه میکنه حمر باید دوریست دور حمر دور. در مسیر دفاع از دین خدا باید حرکت بکنی که عزیز در این ای که خدا به انسان ها داده دینشه اینم درس دومشه میدانسته اصلا سخنشم هم همینه ان دین و محمد لایستقیم الا بقتلی یا صیوف خو دینی اگر قرار دین خاتم و دین قوی و مستحکمی چون اسلام استقامت پیدا کنه استوار بشود و بر جای خودش بیسته و این به این قیمت تمام بشه که خون من و حسین ریخته بشه یا صیوف خو دینی ای شمشیرها بیایید حسین را بگیرید من برای این قضیه آماده هستم دقت داشته باشید میدان استعاری چرا رفته دقیقاً سوال این که چرا نباید برود هر کسی مسلو باید این کارو بکنه فرایده بکنه اینم مطلب دومشه چون دفاع از آین خدا مطرح بود مطلب سوم کدومه مطلب سوم اینه آیا برای آمادن در راه خدا هیچ زمان دیر هست یا نه واقعی کربلا میگه نه همواره راه بازگشت به سوی انسان‌های خطاکار بازه هست و داستان کربلا به شما نمونه ها رو نشون میده حد عقلش در ماجرای های کربلا شما دو تا نمونه رو میتونید ببینید دو نمونه رو امونی اول هر ابنه یزید ریاهی این لشکر امر سعده مقابل امام حسین وای سده جوری هم وای که اهل حرم ترسیدن مثل زینب و بچه ها میاد جلوی امام حسین رو صد میکنه این همچه آدمیه حالا در وجود حر چی بوده من رو نمیدونم واقع. یعنی خدای متعال در وجود خور به چه مدتبی توجه فر بوده که با این توفیق و داده رو من نمیدونم من نیافتم البته قضیه رو ولی همین آدم ظرف ساعتی دگرگون می شود دگرگون می شود به اردوی حسین می پیوندد بعدم عنوان میکنه. چون من نخستین کسی بودم که راه رو بر شما بستم یا حسین به من اجازه بده اولین کسی باشم که خونم در راه شما ریخته بشه و همطورم می شه. یک نفر دیگر هم داری به نام زهیر ابن قین این زهیر ابن قین از طرفدارای شیش آتیشه عثمان بوده حالا دیگه خدای متعالی بازی هایی داره که ما بلد نیستیم واقعا اون بازی ها چطوریست دیگه یکی از نام های مرکب خدا مسبب بل اسبابه یعنی خدایی که وسوال خود جور میکنی اینجا دقیقا این نام رو آدم مثل آقایش میتونی ببینه یا مسبب بل اسباب امام حسین حرکت که میکنه از مکه طرف کربلا که میاد زهیر یه جوری حرکت میکرده تصادفی البته که با امام حسین هم مسیر بود یه جایی میرسن هیچ علاقه به امام حسین نداشته دشمن امام حسین بود یه جایی میرسن که هر دو اونجا خیمه میزنن فرستاده امام حسین میاد سراغ زهیر به زهیر میگوید فرزند پیغمبر تو را خانده است و دعوت کرده اجابت بکن میگه نمیرم نمیرم با حسین کاری ندارم که اینجا یه همسری داشته که همسران در زندگی مردان و شوهران فوق العاده میتونن موثر باشن در این ارتباط داستان‌های فراوان دارم که براتون بگم اون تو وقت او همسرش بانوی آزادهی بوده و علاقمند خاندان پیغمبر بوده به زهر میگه خجرت ده میکشی تو پسر پیغمبر دنبالت فرسده میگه من نمیام خجرت ده میکشی پروبین با تو چی کار داره این همسر رو تشتیه میکنه که ملاقات امام حسین بره سربطمند بوده بوده زهر دار بوده خیدم سربطمند بوده میاد میشینه با پیش امام حسین نیم ساعت میشینه یه ساعت میشینه نمیدام چقدر میشینه زهیر وقتی از خیمه حسین میاد بیرون زهیر دگری شده بوده میاد سراغ از زنش و همسرش میگه هرچی دارم مال شما من رام انتخاب کردم تمومی شد من بعد در رکاب پسر پیغمبر باشم همطورم هست میره شهیدم میشه خب این درد چیه اولا برای گناه کرده ها در قرآن کریم آیاتی ما داریم قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا هر چی هم گناه کردی از رحمت خدا مایوس نشو خدای متعال همه گناهان را می آمرزد پروردگار سبحان همه گناهان را می آمرزد نگو خدا از من نمیگذره این کار شیطانه، همین هر کار شیطانه تا هر جوش هم رفتی برگرد بیا این بحث اول برای گناه کاره بحث دوم برای کسانی که کار ارشادی میخوان بکنه یعنی افرادی که خدا هدایتشون کرده اینا میخوان دست گمراهان رو بگیرند این مطلب فوق العاده مهمه یه کار ارشادی بسیار کار زمانبریه حوصله میخواد فرابان دقت میخواد فراوان و بعد تحمل میخواد فرابان و علم میخواد فرابان همه این رو میخواد تا تو دست یک نفر رو بگیری و از گمراهی و زلالت او رو به سوی نور رهنمایی بکنی کار خیلی دیه. هرگز این داستان در کربلا به ما میگوید هرگز از انسان‌های کجراه نا امید نمیخواد بشید ممکنه دوتا کلمه عرف درست بزنی از روی دلسوزی بزنی از روی دینت بزنی یک نفری که چهل سال در وادی ظلمانی بوده برگرده بیاد زهیرم دور بود هر همین جور بود نفس گرم از رت عبا عبدالله به اینها میخوره به دنبار این نفس اینا دگرگونه میشوند. تو هم می توانی همین باشی بله نگیر از فلانی گذشته دیگه او دیگه آدم به نیست نه این نیست داستان کربلای ما موسم ما نشان می که بعد هر کسی در هر مرحله از برای زندگی می تواند برگردد خدای متعالی این قدرت و این نیرو رو در او قرار داده که ببینه بشدود بسنجد تحقیق کند مقایسه کند و بعد راه درست انتخاب بکنه فقط بعد حوصله داشته باشی حوصله و حسل خلق داشته باشی یا واسه این هم اینم داستان دیگر و درس دیگری که از حضرت ابوالعبدالله علیه الصلاه و السلام باید از این ماجره بگیریم و اما داستان دیگر آیا کاری که من قرار الان انجام بدم باید همین الان سمر بده کربلا میگه نه اینجوری نیستش کاری که مبنای سید اقلانی و اندیشهی و از اون طرف مبنای سید دینی و مذهبی داشته باشه الان شروع کن ممکنه الان به سمر ننشیند این حال یه ده سال 20 سال دور بکشه داستان امام حسین قرنها برش گذشت کارها کردن که حسین نامش بره قبر امام حسین رو مرتب و مکرر به آب بستن که اصلا نابود بشه تمام این تلاشا رو کردن اما نشد نشد چون جوهری که در این ماجرا خابیده بود جوهر الهی بود و خدا هم به همه ما این نوید رو میدهد یریدون یطف اونور الله بهافاقیم و الله متمنوری. یه دی خیال میکنن با دهن میتونن نور خدا را خاموش بکنن نه نمیشه. خدا نورش رو تمام خواهد کرد. لضا حسین به خاطر خدا حرکت کرده به خاطر خدا جان باخته و خدای مطال هم امر او را که در جهت احیاء دین خود این خدا بوده. خدای مطال هر روز بروزو. ظهور و کسرت و فراوانی بسیار بسیار قابل تعمقی بخشیده است هر روزم که داره میگذره عرض کردم به عظمت حرکت امام حسین افزوده میشه نه در کشور ما سهل است در تمام دنیا همی الانش همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم برخی از این موارد رو من در جای ثیق قبل خدمتتون در صدق خدمتتون عرض کرده بودم از کار صحیح، کار حسابی، کار خدایی رو شروع بکن. ممکن الان به نتیجه نرسی، اییین نداره. کار صحیح باشه، مدتی طول بکشه ولی بدون اگر کار رو به نیت تقرب به الله کرده باشی، به خاطر این کرده باشی که به خدای نزدیک‌تر شوی، به این جد انجام داده باشی کار خیرت رو. خدای متعالم بر این کار چه خواهد کرد؟ برای این کار تاثیر خواهد نهاد و مرتب و مرتب در آینده کارتو چه خواهد شد؟ کارتو مرتب گسترش بیشتر پیدا خواهد کرد. خب. درست دیگری که از کربلا میتونیم بگیریم. یک بانوی بزرگواری که البته شهنش در این مدت زمان اندک مطمئن نمیگنجه. یه زمان میخواییم که دربارو مستقلن سخن بگوییم. نام این بانو این هست سلام خدا بر زینب باد شما یه زنی رو که دیگه دوران جوانی رو قطعا پشت سر نهاده به دوران تقاوت رسیده پنج و شیست سالشه در داستان کربلای حسین پنج و شیست سالگی دیگه سن جوانی نیست چه برای مردشه برای زنه ولی این شیرزن به قرون نویسنده مصری خانم بنت و یک خانومی سنی این البته این خانم سنی شافعیه به نام عایشه بنت و شاتی یک کتاب نمیشه فوق العاده است این کتاب به نام زینب طلاتو کربلا زینب قهرمان کربلا یا بانوی قهرمان کربلا این کتاب نوشته خیلی کتاب جالبی ترجمه شده این کتاب اونجا در مورد زینب کبری چه چیزها میگوید شخصیت عظیم القدر این بزرگوار 56 سال اون وقت در این سن باید تو این کوران قرار بگیره نه کوران به شکل تماشاچی نمایش نه به شکل بازیگر نقش بسیار مهمش یعنی چی یعنی حسین نیمه کارو انجام میده زینب نیمه دوم کارو انجام میده برنامه حسین رو زینب روشن میکنه نهزت حسین رو زینب به کمال میرساند توجه فرمود اونم با اون همه مساحب با اون همه دشواری ها با اون همه مشکلاتی که در مسیر تعمل کرده سخنرانی و عجیبه در کوفه عجیبه یک زن بیدفاع یک زن بی واقعاً. دشمنم کی دریاست؟ و از اون هم در مجلس یزید دعنت الله علیه چه میکنه این سن سابقه برین در خانو... خانواده های شیه این متب رست بود به پ بچه هاشون دختتر میگفتن این خودبه ها رو شما حفظ بکنید از جمله خودهایی که می حفظ بکنید خطبه فاطمه زهره در مدهسوبک بود. خطبه فدکیش حفظش کنید. خطبه شخصقی امیرل الممنین تو ن و و از جمله خودبه هایی که پدرهای متدین به بچه ها میگفتن حفظ کنید بهتون جایزه میدیم خبه ها به هم در کوفه هم در شام اینا تجلی شیعه است تجلی روحه دلاورانه شیعه واقعا هماسی شیعه است آدم وقتی میخونه میفهمه که چه خبر بوده اونجا یک زنی فیکس به گردنش بستن زنجیر به کتفش بستن با اون وضعیت با اون وضع قضا با اون وضع استراحت تازیانه خورده فوش خورده زخم زبان خورده فت و فراوون توجه و فرمودید حالمت کجا قرار میگیره؟ حالمت قرار میگیرد در مجلسی که یزید درست کرده به خاطر که نشون بده من پیروز شدم اون سطح نگاه کن، اون بالا کجا، اون پایین کجا اون وقت هم نگاه میکنه قدرتی که در امیرالمومنین علی یبن و عبی طالب بوده و در همسر مکرمی او صدیقی کبرا فاطمه زهرا بوده انسان همکتون در زینب کبرا پیدا میکنه. اون سخنان عجیب قریب توجه و فرمودید کار نیمه رو امام مسن کرده نیمه دیگر کار مخصوص هم عجیب آدمام اخ, اخ اخ اخ گفتن این کلمه ها. او در اوج اقتدار رو از من همه سفرهای کشور خارجی هم دعوت کرده بیا می پیروزی من رو آ اینا تو اونجا مقابلش او بالا تخته. امنالعر یبنت طلقا یبنت طلقا خیلی حرفه این ادالت زنان خودت رو در پشت پرده نگاه بداری و فرزندان پیغمبر را به این شید در میان مردمان بچرخانی. این عدالت و یبنت خیلی عجیبه ای بچه آزاد شده ها چی به یاد یزید بیاد با این کلمه اون زمانی که رسول بزرگوار اسلام مکه رو فتحش کرد بدون خون ریزی البته بعد همه رو آزاد قرار داد همه رو آزاد داد و از جمله کسانی که پیغمبر آزادش کرد خود عبو صوفیان بود دشمن شما رو اول پیغمبر اکرام بود یه سب تو مطلقا پیغمبر اکرام عجیبه تو اینجا داستان اخلاقی پیغمبر خدا بدانی رو. مردم مکره جمع کرد فرمود دانستید با من چی کار کردید؟ همه گفتم بله میدانیم په نام برد چی کارا کردید؟ شب عبی طالب، استخان، شکمبه، همه اینا همه رو میدونیم فرمود من الان با شما چی کار کنم؟ الان قدرت دارم ده هزار جوان شمشیزن در خدمت منه. عمر کنم بلا فاصله عمل میکنند. <تصفيق> تک تک تونو می با شما چیکار کنن گفتن هرچه فرمودی صحیح هست جز آنکه تو کریمی و فرزند کریمانی انتل کریم من اولاد کراما این قد می دونیم ما پیغمبر فرمود من امرو جملهی به شما می گویم که یوسف برادرانش فرمود چه بود؟ لا تخریب علیک و اذهب در برابر اون همه کاره برادران سرزنش بطورم نمی کنم برید پیغماند ازحبو فانتومو طلقا برید همتون در راه خدا آزدی بیتونم بردتون بکنم بگیرمتون نمی کنم این پیغمبر اکشمه این رحمت رسول خداست در برابر اون همه کارایی که مکیان کرده بودن زینب کبرا تو اون مجلس خیلی حرفه یزید و حیمنه و میمنه و شکوه و همه حرفا تمام حزاری که اونجا بودن بزرگان کشوری و لشکری همه سفرهای کشوری خارجی در برابر همه اونها بگوید ازحبو فانتومت طلقا یبنت طلقا به دنبال بیان پیغمبر اکرم بچه همون کسی هستی که جد من تو رو آزادت کرد او را آزاد که جد تو باشه که ابو سفیان باشه اینا خیلی دل و جرعت میخواد برمیگردیم به اول سخنمون چون بیشتر از این هر حتی درس های کربلا براتون بگیم همینقدر کفایت میکنه اول سخن چه بود؟ وقتی که یاد حسین میکنیم یاران حسین میکنیم چه می‌گیم؟ میگیم یا لای تانا کن نا ماعکم فنفوزا عظیما یا این جمله رو داریم درست میگیم داریم شوخی میکنیم و دوال خارج نیست دیگه کربلایون ای کاش با هم همراهش بودیم اگه امروز کربلا نیست چرا هست و این کل یوم آشورا و کل ارض کربلا حدیث نیستش در دهان ولی واقع خارجیش همین الان دیگه دشمنان دینمون هستن دارن فعالیت دارن می برند. دارن می برند جوانان ما رو اگر دل به دین داده این و برای دین داریم دل می سوزانیم باید برای این قضیه فکری بکنیم حرکت داشته باشیم نانه تو این مملکت کسیری جاسوس جاسوس امریکا و انگلیس شکی توی این مطلب ندارم تحت عنوان مسیحیت بیان دین بچه های ما رو ببرنشون اونم با مزخرفات در جه اول که برخی از این مزخرفات در عالم اسلام وارد شد امام حسین رفت جان داد به خاطر یه گناه امد آمر بشه این از مزخرفتری مزخرفاته کی همچه حرفی زده اگه حرف حرف خود امام حسین غیر از این گفته اگر مال خودت برای خودت خوبه این حرف از مسیحیت داخل اسلام شد یک داستان خرافه یک داستان ای که عقل و خرد به آن میخندد ایسا مسیحی که مرمید چیکار است پیغمبره پسر خداست خود خداست شیریک خداست در یداروبول جهان چیه؟ بالاخره چیه؟ شما از همه مسییان عالم سوال کنین ایسا مسیحی بالاخره چی است؟ من بخوام قبولش کنم باید به چون من قبولش بکنم اگر جواب به شما دادن من جایزه میدم به تو خب یه همچین کسی و هر شغلی شما میگید ای آمده بالای دار رفته ای وای بر من میگن خدا و یه پدر پسر یکتا و یه گانه خود رو فرستاد اینا مذابینی که دا بعد جدیده بره بالای دار تا گناه همه مقاملان تا قیامت آمرزیده بشه وای وای بر من ایسا و مسیح پاک و قدوس گناهی کرده بوده که باید بالا دار بره من گردن کلوف دارم انواع با شیلات رو درست میکنم انواع گناه رو مرتکب بیشم و به جایی که من کیفر ببینم به خاطر گناهانم یک قدوس پاک باید بره بالا دار ای بابا آخه به این خره دادم باید بخنده چرا باید اینجور بشه اصلا بعد راه رو برای همه کار انسان باز میکنه و قبلا ایسا مسیح همه چیز رو پرداخت کرده این مسئله به نام فدا ستون فقرات مسیحیت، ایسا مسیح به این تحتیب را رو باز کرده خب بنده مسیحی هم فقط میگم به ایسا مسیح ایمان میارم حالا به چه پستشم تنبم به مونه ایمان آوردم من هر کاری درم بخواد بکنم میکنم نه خدای نه از قیامتی نه از کیفری نه از ای این اصلا ترسی نداره که چون قبلا عیسی مسیح همینا رو پرداخ کرده با خدا تصفیه حساب کرده آخه اینم شد هر دین میاد انسان رو خدا ترس بکنه دین میاد انسان رو مراقب بکنه دین میاد انسان رو موازب بکنه خطا نکنه گناه نکنه حق دیگران رو نخوره دروغ نگه تهمت نزنه غیبت نکنه کم فروشی نکنه آخه این دینی که شما آوردین که مال شما هم است یک نفر یهودی که مسلمان نشده بود که هیچ یک نفر یهودی که مسیحی هم نشده بود به نام پروس پدری از مسیحیت در آبادون سرش نپیدا تمامش ریخته به هم دیگه همه ش ریخته به هم دیگه و در نزد مسیان پروس مقدس همه سلوسته متاسفانه این آدم همچی خرافایی رو ساخته به خورد مردم داده مسیح چه که اصلا بالا دار رفته و چرا باید بالا دار بره چرا خبت بره این مطلب ایست به عنوان مطلب اساسی و عمده مسیحیت متاسفانه جوانان ما هم به لطه بی اطلاعی بی اطلاعی بنا فهمی اندازه که این امور رو متوجه بشوند در دام این افراد دور ای که دقیقا از خارج دارن رهبری بری می میکنند جیر می و می روند و آینه خداوی اسلام راهاش میکنن خواهد به سرتون بکنن خوشها در اسلامی همچه حرفایی هستش کلو نفس اممه ما کسبت رهی نه هر کسی در گروه اعمال خودشه کلو امر اممه ما کسبت رهی هر کسی در گروه اعمال خودش هست مسئول اعمال خودشه لا تذر و بازرتون وزر اخره خدا ما رو آزاد قرار داده باید با آزادانه عمل بکنیم و مسئول کردارهای خودمونم باشیم را رو خدا نشون داده مسئول خود ما هستیم دیگری چه گناهی کرده به خاطر بالا داره بره با به هر بچه پنس هر بار بزنیم میخنده تا مسیح که حرفا حالیش نمیشه که بیا ایمان بیار همه حرفا برای دروشت میشه نه اسمنام میگه اول تحقیق بکن بعد ایمان بیار و این مبایین است با فطرت و با منطق و با خرد و با عقل انسانی و با هر انصابی که شما فکر کنی باشه خدا را قسم می‌دیم به حق پیغمبر اکرم و به حق حضرت ابا عبدالله که ایام سوگواری اوست خدا امر فرج ولیش بر پاک‌کننده حکومت واحد جهانی و گستراننده حکومت الهی اسلامی و آن کسی که قرار تمام اچافات تمام زورها تمام استثمارگری ها رو نابود بکند و جهان را تحت فرمان خدای و قوانین درخشان اسلام در آورد یعنی حضرت بقیت الله ارواح و نافدا هرچه زودتر امر فرجش رو اصلاح بفرماید ان شاء الله ما مدتی ده دقیقه البته بیشتر فتصات و رامه انتراک داریم و انشاءالله پذیرای مختصری خواهد شد و بعد از پذیرایی هم به مدت انشاءالله نیم ساعت ما پاسخ سوالات رو خواهیم داد انقدر که بلد باشیم یا کتبی و یا شفایی انشاءالله و انشاءالله از جناب آقای دکتر خمایی هم که امشب زحمت کشتن تشوردن استاد دانشگاه شاعر بسیار بلند مرتبت و گران ماهی از کسانی که بنده به دوستیشون افتخار میکنم انشالله در خاتم جلسه پنج دقیقه هم باید از محضریشون ما استفاده کنیم آقای اسماعی رضایی یاد باشه انشالله در خاتم جلسه و دوستان دیگرم تشریف نبرم بعد از خاتم این قسمت چون شنیدن اشعاریشون گمان میکنم که اینقدر قیمت داشته باشه که ما بتونیم یه نیم ساعتی رو اینجا تعمل داشته باشیم یه ببخشت سلامون علیکم من این جمعیان معمولاً عصد همهی شعر میخونم و تا در محضر شما خیلی سخته با کسب اجازه از محضرتون و سعدی هم میگه اگرچه پیش خیقتمند خاموشی عدب است. به وقت نوست به که در سخن کوشی دو چیز دیگه اقل هستم فرو بستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی من با کسب اجازه هست خاصتن از محضر ع چون امون جمعه هم هست عبیاتی رو تقدیم میکنم به محضر امام زمان منطقه با کس بجازه شما ما بسیار خورسند هستیم که در خدمت جناب استاد همایی هستیم و انشالله که حضور ایشون در این محول مستمر باشه ما هم استفاده ببریم انتهایی هم اشعاری و انشالله از استاد خواهیم شنید و بره من خواهیم شد من که واقعا خورسندم استاد با کس بجازه شما خب اول یه صلوات و فرسی سلامتی امام زمان اللهم صلی اللهم محمد و آل محمد اصلاد این شعر هم از حافظه هم از یه دوست دیگه که ترکیب شده من محصر شما درس پس میدم ای زیبته آلم مجموعه زیبایی ای زیبته آلم مجموعه زیبایی سر حلقه جن و انز. سر دفتر دانایی در پرده غیبت چند، ای ماه جهان پایی، ای شهر خوبان، داد از غم تنهایی، دل بی تو به جان آمد، وقت است که بازایی. امید وسال تو ای دوست جوانم کرد، عشق تو مرا فارق از هر دو جهانم کرد، بازا که فراق تو بیتاب و توانم کرد. مشتاقی و محجوری دور از تو چنانم کرد که از دست بخواهد شد پایان شکیبایی ای, ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی دل بی تو به جان آمد وقت است که بازایی بس خیره مقدم میگم محضر جناب استاد همایی جهت سلامتی آقای امام زمان و خادمان دین مقدس اسلام و مذهب حقه شیعه سانشریه خاستتا جناب استاد همایی اجماع صلوات بلندی مرحمت بفرماید اللهم صل علی محمد و آل محمد الان جلسه پرسش و پاسخ هم, هم برگه های توزیع شده دوستان میتونن برگه ها رو بنویسن به ما بدن ما خدمت دکتر بدیم میکروفون هم هست به صورت شفاهی هم سوالاتتون رو میتونید مطرح بکنید خب استقبال میکنیم از در واقع جلسه پرسش و پاسخ آیه دکترم تشریف بیرن دوستان سلواتی بر محمد و آل محمد مرحمت بفرمید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجان. بسم الله الرحمن الرحیم در این زمان اندکی که ما در اختیار داریم و قرار از که از جناب آقای همایی هم استفاده بشه بدن و همه تون بشین از اشعار ایشون دو تا بحث داریم که تا زمانی این بیاد اگر کسی کاغذی نوشته باشه که اعتباراً نوشتن اگر دوستان دگری سوالات شفایی هم داشته باشن طبق معمود این جلسه مطرح بفرمایید در حد مخصوصا در حد زمان و عرض کنم حضور شما که در حد توانایی علمی این بنده اگر سوال شفایی از مقدم بداریم اونها رو مطرح بکنیم بعد به این دو سوالی که ها به شکری کتبی به پردازیم برای پاسخشون همداله همه چی حل مثل این که این سوالی نیست همه چی روشن هست در مورد شخصیت مختار من دو کتاب شما معرفی کنم کربطه این سخنانه من ارتباطی به این سریال نداره خواه. این سریال یه بحث دگریست و حرفای من بحث است دو کتابی که وجود داره یک کتاب بهار علامه است در جلد چلپنج بهار که در واقع بیان زندی از عبا عبدالله علیه السلام هست و البته می دانید به زبان عربیه اونجا یه بخشی تحت عنوان مختار اصلا هست و قیام مختار دوستانی که عربی بلد هستند حتما از این کتاب استفاده کنند چون تقریبا بلکه تحقیقا آنچه در زمینه مختار از زبان مبارک ائمه ما جاری شده است در این بخش و در این کتاب آمده این یک کتابه کتاب دومی که من میتونم بهتون معرفی کنم که به نویسندشم بسیار معتقدم البته یعنی کسی نیست که به این نویسنده معتقد نباشه برای ما آشخباس غمی صاوه مفاتیح دیگه ایشون دیگه کتاب داره به نام منتهل آمال کتاب به نام نفس المحموم داره نفس محموم یعنی نفس کشیدن آدم غمناک جز آن که این کتاب زبان فارسیه یک کتاب فوق العاده خوب ما ناشناخته در زمینه داستان کربلا از اول ایشون بحثو مطرح میکنه تا اون آخرش میره درست درسته برای برخی ها این کتاب حکم مقتل رو داره که از این کتاب استفاده میکنند و در جهت خواندن روزه که البته همینطور هم هست اما فقط مقتل نیست بلکه کتاب مفصلیست بسیار مفصل شاید کمتر کتابی در مورد واقعی کربلا باشه به این دقت نمشته شده باشه اینا حتما دوستانی که علاقمندن که به امام حسین و ماجره های کربلا و اطلاعات دست اول داشته باشند. حدنان تاییش بکنن کتاب زبان فارسی هم است نفس محموم اسم کتاب هست در این کتابی هم که عرض کردم برای تو نفس المحموم یک بخشی تحت عنوان قیام مختار اصلا آمده اونجا لذا برای کسانی که زبان عربی بلد نیستن یکی از بهترین کارهایی که به این کتاب رجوع بکنند اون چه من در رجوع خودم در رجوع خودم نمیخوام بگم صحیح من فهمیدم نه اینو فهمیدم دریافتم نسبت به شخصی به نام مختار ابو عبیده سقفی این است که مجموعه یعنی وقتی مدح رو به قول شعرا رو هم دیگه بیریزیم و بخوایم در واقع قربیلش بکنیم اون چه من دریافتم مجموعه از مختار و کار مختار ائمه ما اظهار رضایت کردند اون که من دریافت کردم هر با سریال من کار ندارم و یه بحث دیگر رو مقاوله دیگریزم. چون در نوع سریال ها مسئله بیان حقایق قطعا تحت شوهای پول مسئله مالی قرار میگید. شما در این تردید نکنید. ولو سازنده شرکت میخواد باشه باشه. اما بر مبنای این دوتا کتاب که هر شده باراتون اون چه من دریافت کردم این است که عیمه ما عمدتا عرض کردم به نحوه قالب با ارز میکنم. از کار مختار و از امر مختار و عمل و اظهار رضایت کردن و مختار رو در این ارتباط ستوده اند خلاصش ولی من حرفم اینجا ملاک نیست سندیت نداره ولی شما حتما به این دو کتاب اگر عربی میدانید کتاب بهار علامه اگر براتون عربی دشوار هست کتاب نفس المهموم بگیرید و بخوانید آنچه دریافید همونه که خودتون مخصوصا عرض کردم آشخباس دید بسیار در بیان مطالب دقیق بود اشقاص قمی خیلی خیلی مختات ایشون هر چیزی رو نقل میکنه خیلی جا هم در کتاب خودش برخی امور رو که نقل میکنه خودش در او انقل هم میذاره تازه آدم دقیق به این معنا عرض میکنم هست نفس المحموم حتما بگیرید و بخوانید و اونجا هر چی میخواید در مورد مختار نظر پیدا بکنید پیدا بکنید آیا حضرت زهره سلام الله علیه ها بر سایر اهل بیت ولایت دارند؟ لطفا توضیح بفرمایید از من سوال بخواید بفرمایید بحث ولایت اعمه بر یکدگر و بحث این که حضرت زهره بر اونها ولایت داشته باشند حداقل از نظر شخص این بنده یه مقدار محل تعمله ما نظر منصب و مقام داریم عیمه و همدیگه متفاوتند در میان عیمه ما وجود مقدس حضرت امیر المومنین سلام الله علی ایشون نسبت به عیمه دیگر افزلند از نظر مرتبت و مقام حضرت عبا عبدالله الحسین بعد از امیر نسبت به عیمه دیگرشون ایشون و افزلند این یه بحثه یه چیزی را میتونی اینجا استثناء بکنیم اگر امامی در زمان امام دیگر زندگانی بکنه باز البته این معناش ولایت داشتن نیست بلکه تعدب داشتنه یعنی امام حسن و امام حسن در یک زمان زندگی میکنن بعد از شهادت امیر المومنین حضرت امام حسن مشتبه ولی امرند ایشون ولایت دارند حضرت عبا عبدالله حسین در زمانی که ایشون متصدی امور ولایی هستن کاری در اون محدوده انجام نمیده اصاسا این معناش این نیست که امام حسن بر امام حسین در زمان خودش ولایت داشته باشه ولایت یعنی صاحب اختیار بودن یعنی در واقع متصرف در امور هر کسی بودن یه خود بیان این قضیه دشوار خواهد بود حالا حضرت زهرا سلام الله علیه ها بدون هیچ تردیدی خدا بیا مرزاد انشاءالله انواد همه ما را بانانی که به گردن ما حق دارند از پدر و مادر و به خصوص اساطیدی که ما رو در مسیر اهل بیت بار آوردن شما به اینایی که شما رو آوردن تو این مسیر دستتون گرفتن آوردن و شما رو اهل بیتی کردن هر چقدر بخوای دعا کنید کم کردید حالا من نمیخوام وارد خیلی از بحثا بشم و خیلی از پرده ها رو بردارم فقط میتونم به شما بگم قدر نعمت ولایت را و به همین معنا را که پذیرش ولایت اهل البیت علیه مستلات و اسلامه هیچ کس نخواهد فهمید مگر موقع مردنش یعنی انقدر این نعمت سنگین است انقدر زی قیمته که در این دنیا با هیچ چیز دیگر قابل قیاس نیستش اون زمانی که انسان میخواد از دنیا بره یعنی شخصی که معتقد به ولایت دوازده امام سلام خدا بر همشون باد. اون وقت خواهد دانست که شعن ولی الله و شعن ولایت تا چه حط استش. اون وقت خواهد دانست اون وقتی که میخواد انسان رو داخل قبر بذارن اون وقت خواهد دانست و از همه اینا مهمتا در پهنه محشره اونجا که قرآن توصیفات عجیب غریب داره. ی اوم یا فرل ممن اخی و اممهی و عبی و صاحبتی و بنی ل کلبر اممن هم یا اومدن شانن یغنی. روزی که آدم همه کس فرار میکنه از نزدیکترین اغربش فرار میکنه. برادرش از مادرش از باباش از بچه‌اش، از دوست صمیمیش فرار میکنه انسان. چه هرچم روشنه اون روز هر کسی فقط مشغول خودشه با من میخوان چه معامله ای بکنن. چون اقرا کتابا، کفا به نفس کلی و که عصی با. نامه دست آدم خودش مینام میگه بخون این کاراته. کفایت میدونه خودت حسابگر کاری خودت باشی بگو میگم حضرت عباسی کار رو کردی. آدم اون با چه معامله ای خواهد کرد؟ اصلا فرصت پرداختن به دیگران اصلا نداره. اون روز معلوم میشه شعن ولایت و مقام ولایت اون زمانی که میان با جلال و شکوه و هر تمام دار و از همشون مهمتر، از همشون مهم حضرت زهره است. یعنی آنچه که در روایات ما نه فقط مالمامال سنیا اماده اتفاقا این قضیم شان و شکوح و منزلت گزرت صدیقه خواهد آمد در روز قیامت حتی شخص پیغمبرم با اون مقام نمیاد با یه جوری میارن که اصلا بی بدیل و بیمثیل قلاصه در روایات صحیه فراوان متواتر بر یک دونه زمان بر یک بسطنان ناقه از نور سوارش میکنن ناقه نور از بهش بیارن فاتبر سوار اون میکنن اون وقت فرما آمدنش هم اینجوریه هفتاد هزار فرشته در هر سمت او راست و چپ جلو و عقب. یعنی دیویست و هشتاد هزار فرشته فقط ایشون رو ازگرد میکنن با اون چیز جبریل میاد زمام این ناغر رو دستش میگیره با این وضعیت از وزرار رو میارن وقتی که میخوام بیارنش صدا میرسه به همه اهل محشر یه بلنگوهای اونجا بین چقدر خویه یا اهل الجام قضو ابسارکو من فاطمه تو تمور چشماتون همه برد ببندین تو از بچه هاش که محرمشن سراتون هم زمین بندازی تعتا و رعوسکم قضو ابسارکم اینجوری ها چه ببندین چون فاطمه دخت پیغمبر میخواد بیاد ردش بری بهشت این مقامات اون رو روشن میشه حضرت زهرا که بخوام بگیم بر بچه هاش ولاد داشته باشن گفتن این کلم بر برای من سخت عده اقلش اگه شما بخواهم این خودتون بگید ولی بچه ها حرمت مادر رو خیلی نگر بیدنن یه بحث در زمان خودشون دارای مقام ولایت کلیه الهیه بودن همانند امیر المومنین منتها مجاز به اعمال این ولایت نبودن این فقط کل ماجره امیر مجاز بود فاطمه زرها مجاز بود ولی داشت داشت کسا وقتی که اون بازی رو سرش در بردن این ناکسا ناکسای عرض کنم حضورتون که قطع و طریق فلاشت گرفتن و عاملش همونجه بیرون کردن آمدن در خونه اون بازی رو در بردن دار. چه تاریخ میتونین این ها رو حصفش بکنستن کدوم سینه میتونه از این نربا خالی بشه یه دختر پیغمبر تنها یادگار پیغمبر اکرم که این همه عقب گردن این مردم داشت حق ناشناس یه همچین معاملی بکنم مالشو بگیرید در خونش بیریزید پلوشو بشکنید شوهرشو بگیرید دزور ببرید یه جمله فرمود فرمود وله اگر دستش شوهرم ندارید موهان پریشان میکنم کسی در مقید موام پرشون میکنه. در خانه خدا میرمم و بدانید که شهن من در خانه خدا از ناقه ساله کمتر نیست به پی کردن ناقه ساله خدای مدار زلزله فرستاد دارم این مقامو دارم بله دارم اینجا هم خدا اجازه میدهد که من اعمال این ولاعت رو بکنمش به این میزانش بله این شعار بلند پر... بلن مرتبت ما که خدا هر جا اصل آقای حسان رو یک دونه قصیده ی عجیب غریب در مدت زهرا داره که من یقینم این است که ایشون در سرودن این قصیده قطعاً معیت به تایید روح القدس بوده از زبانات زهرا منم که اسمت الله به ساق ارزی ورم حبیبه خدا و منم حباب نور داورم ولای من ولای او رزای من رضای او که من ولیت الله و زهر بدی مطهرم قصیده عجیب غریبه بگیرین این قصیده رو هر جا پیدا کردی یقینا روح القدس بر او تایید کرده که این قصیده رو گفته من ولیت الله و بدی مطهرم بله یه بحث دیگه البته ما الان داریم آره این سوال تا اینجا رفتیم ایم نداره اون بحث دگر اینه حضرت صدیق سلام الله علیه ها که جان عالم فدای نام این بزرگوار باد در پیش خدا مقام عظیم داره منزلت عظیم داره امیر و همین جوره دوتا بزرگوار رو خدا کف فکردگر خلق کرده حدازه همدیگه خلق کرده، هر چی علی داشته فاطمه زهرام داشته. لذا او زن و او هم شوهر. اما یه بحثه در هر زمانی، در هر زمانی، خدای متعال افرادی همانند ما را که این افتخار را داریم که به امّه معتقدیم، در هر زمانی به امام زندگی اون زمان سپرده این نکته رو فرا بگیریدش مطمئناً شعن امام زمان ما حضرت مهدی از امیرالمومنین بالاتر نیست قطعاً بالاتر نیست او بالاتره اما در هر زمانی خدای متعال ما را به دست امام زنده اون زمان سپرده است معنای این سخن چی میشه معنای این سخن اینه الان شما گیر کردی مشکلی برات پیدا شده صدا میزنی یا فاطمه و زهران خب او میشنود مردگان اخسن بزرگواران از ما شنواتران فرشتان در خدمتشون هستن هر کسی ندایی درابرد و فریادی برابرد به عرض او طرف میرسوننش اینجور نیستش اما حضرت فاطمه زهران با اینکه می میتواند مشکل ما را حل کند اما حل نمی کنه. او به فرزندش مهدی ارجا خواهد کرد یعنی او خواهد ور بود مهدی جان این شیعه باب این چی میخواد به او میگه مهدی درخواست اون شیعه رو به خدای متعال خواهد رسانید تو این دعای ندبه عین السبب المتصل این جملهش خیلی قابل توجهه. عین سبب متصل بین الارض و السماء عیننی کجاست در مورد ایشون در قیبتش داریم حرف میزنیم کجاست این بزرگواری که رابطه بین آسمان و زمینه حالا شما به هر امام متوسط بشید امام مسئل مشتبه قربونش برم از تب عبدالله روزه مشکلی داشته باشید متوسط بشید این بزرگواران به مهدی ارجاع میکنن کار رو خب او مهدی چی کار میکنه؟ به خدای متعال عبدتون رو میرسونه اگر مسئل باشه خدا بکنه. باز به دست توانمند مهدی کارتون حل خواهد شد نمیخوام بگم به دیگرا متوصل نشید نه میخوام میگم سلسله مراتب اینها الان حالا فاطمه زهرا با همه عظمت مقامش و علو و قدرش در انجام این کارا مَتعه به حضرت مهدی خواهد سپرد با اینکه خودش میدونه به اذن خیلی کارا رو انجام داده زمان حیاتش هم کرد این کار رو هرگاه خدا ازن میداده اون اعمال و لحش رو میکرد رو این جهت این بزرگواران اولیاء الله هستند یه وقتی هایی بزرگی سوال کردم شما میخواید مقایسه بفرمایید آیا مقام حضرت عبا عبدالله رو سمالاتره یا حضرت زهرا سلام الله علیه خدا بیا مرزه و رو مرد خوبی هم بود جواب که ما بین مادر و بین فرزندان قضاوتی نمیتونیم داشته باشیم اونا خود شو چه خبر هستش حالا من برای اول چی مدتایی میخوام از بکنم. ما نمی توانیم چنین جمله‌ای رو من نمیتونم بگم که حضرت زهرا اینو میتونم بگم ولایت داشتند اما ولایت بر ائمه تاهرین این گفتنش برای من حداقل یه خود کار سختی است داشتن به اذن خدا هم اعمال می‌کردند اگر ولایت داشت خلاصه این همه آثار وجودی از او در زمان حیاتش صادر نمی‌شد راجع به حضرت زینب سلام الله علیها این مطلب جد، جدن مورد اختلافه آرامگاه عزت زینب سلامون لاحالیها جدن مورد اختلافه انشالله اگه خود من به نتیجهی رسیدم که نتیجه قاطعی بود حتما براتون خواهم کرد از این سجایی کردن عنوان کردن که معمولا هست که آرامگاه این بانوی بزرگوار در کجاست ولی یه چیز براتون بگم این نمال اعمالو به نیاد شما هر خود این سجار رفتید که به نام آرامگاه زینب کبران معروفه به نیت زینب کبران زیارت کنید اثراتش بر شما مترتب خواهد شد این میتونم براتون بگم هر جا رفتید مشکل نداره اما محل دقیق انشالله به احده آینده خواهد افتاد بیشتر از این وقتتون ما نگیریم و جنب آیتون همایی رو خواهش میکنم که انشالله شما رو به فیس برسونن و شما هم باید که ما بی خود ازشون تعریف نکرده بودیم تا شی و ان با یک صلوات ایشون رو استقبال بفرمایید سلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم خداوندا گناهم بس فرجون است ولی لطف تو هم از حد برون است به ها و به یاسین و به کوثر دلم مشکن که دل دریای خون است ضمن تشکر از جناب استاد بزرگوار آقای دکتر فریدونی که از اسازید مسلم هستند و محبت فرمودن تعریف البته در مده من اونطور نیست که ایشون فرمودن محبت دارن من خیلی خوشحال شدم که در جمع عزیزان و دوستان حضور به هم رساندم و منظومه هم با توجه به فرموشات جمع دویدور فیدونی که اشاره به واقع کربلا داشتن و حضرت حسید عبدالی علیه السلام منظومه تقدیم حسید عبدالی علیه السلام میکنم و شما را به این منظومه دعوت میکنم این منظومه در اصل از زمان آمدن حضرت سید شهده به کربلا شروع شده و تا بارگاه یزید به اتمام می رسد حسین جان، عنوانش حسین جان هست حسین جان آمدی جانم فدایت تمام چشم ها محل لقایت بزرگاه تو بر چشم جهان است همیشه نهزتت ورد زبان است علمدارت وود مولود شعبان علی ابن الحسین بر برج ایمان سلای آشغان را نیک سر داد زرسفای محکومان خبر داد در کاخ یزیده همون کاغی که بودش از زبرجد فرو پاشیده شد با نام احمد یزید بدناهاد و چوم سیرت که در جانش نبود احسان و غیرت ز رسوائی خود ناگه خبر شد بعد از اون خطبه عظیمی که جان به دلیل فاجون ایشان فرمودند حضرت زینب کو را فهمیدم اونجا اون خطبه قرا یزید بد ناد و دون ز یزید دو ناد شوم سیرت که در جا جانش نبود احسان و غیرت زیر سایه خود ناگه خبر شد چو خواب اولدگان از خواب بر شد نگاهی بر سر و بر تشت زر کرد به سجات جوان یک دم نظر کرد به خود لرزی چون خوک گلالود بگفتا زیر لبهای پر از دود که چونی ای یزید با این جنایت چرا قافل شدی با یک سعایت حریم آل تاها را دریدی سر فرزند زهرا را پریدی، نکردی رحم بر طفل ساله ندیدی دانه های عشق و جاله زدی سیلی به روی صورت ما برای چند روزی مکنت و جا گلوی نازو که از خرد دریدی سر عباس و قاسم را پریدی. یتیمان را به زنجیر اسارت کشیدی پا به تا امارت سر خوبان به روی نیزه کردی زدی آتش پلیشان خیمه کردی نبوز شرمت زدخت و ثبت زهرا نکردی شرم از زهرا و مولا چرا بستی فراد بر روی اونها چرا لشکر کشیدی سوی اونها زدشت نینوا تا وادی شام کشندی آشقان را گام تا گام چرا زینب اسیر رو زار کردی چرا توهین به بی یک بیمار کردی تو بدنام جهانی تو بدنام جهان, تو بدنام جهان ولی کن حسین ما چو شمشیر و چو جوشن علیه کف دائم در ستیز است همیشه تا جهان باشد عزیز است حسین بر دیدم بگذار پارا و هم باور اش عشق خمارا حسین دیدم بگذار پارا و هم باور کنین عشق همارا سلاوت خط بفر من تصدیل در این جلسه منظومی هم تقدیم محضر مبارک که زینب کبری بکنم ولی چون وقت کم است و جامعه استاد فیدونی برنامه های گستر و وسیع دارن بسنده میکنم به همین قسمت انشاء در برنامه های بعدی سعادتی باشه عمری باشه در شما خواهم بود و سلام علیکم و رحمت الله